دیده دریا کنم و سبر به صحرا فکنم و در این کار دل خیش به دریا فکنم از دل تنگ گنه برارم آهی کاتشن در گنه آدم و حوا فکنم مایه خوشدری آنجاست که دلدار آنجاست میکنم جه که خود را مگر آنجا فکنم بگو شاو بند غبا ای مه خورشید کلا تا چو زلفت سر سودا زده در قاف کنم خوردم تیر فلک باده بده تا سر مست عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم جرعه جام بر این تخت روان افشانم قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم حافظ تکیه برای ایام چو سحوست و خطا من چرا اشرت امروز به فردا فکرم